بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء وسيد المرسلين واله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح ما ابل ما تلبي تقولون بحث استقامات بحث قرآن وصنات بحث استدلال وعمل بونها وبعد از مطلب اون به مطلب دیگری و آنم بحث کلام خدا او مخلوق هست یا نیش و بحث رؤیت خدا و اندر روز قیامت از مسائلی که ما هم اینجا معلق به می‌کنه میکنه نوکنید در هر مطلبی در یک یا دو بیت خلاصی رو رومیه موقف اهل سنت و به ذا لکه دان الادقیه این باشه این دینی که میخونیم دین متقیان امثال اوزاعی امثال مالک، امثال مابی حنیفه، امثال سفیان سوری، سفیان ابن عینه و دیگران از ائمه اگر اینجا بدون اسناد داریم دیگر ائمه از شاگردین همین امام ابن نبی داود مثل ما به ابن بکتت فنجل کتاب می نویسه با اصانید و آثار صحابه و تابعین در تایید این مسائل کتاب می در شرح این کتاب اسفراینی و خیلی از اهمه اومدن کتاب نمیشتن همونطور که ما تحویه در این عنوان یک ماده عین مشرح شده این متن خیلی از ما به اهمیت دادن و شرحش نوشتن نه اون شرحی که کلام عقلانی ها و راسوس و سقراط و میسینا و نمیدونم دیگه رام باشه نه شرح مستند به دلیل و اسناد مثل امام لاله کیدر اصول اعتقاد اهل سنت و جماعه 5 همش گفت حدثنا فلان حدثنا فلان با اسناد ما اعتبارمون به اسنادمونه به اعتبار به اسنادمونه اگر اسناد را از ما بگیرن دیگه ما چیزی نداریم دیگه دین نداریم ما اصلا دیگه چجوری خدا رو به پرستیم اصلا این اسنادی که به حرف ما به عمل ما اعتبار میده اگر اسناد باشه دیگه میشه هوا و هوس میشه هوا و هوس دیگه هر کسی هر طریقه بخواد خدا رو میپرسته چه قصه موسی و شبان یادتون هست مل... تو مدرسه خوندید بحث اون قصه کفرامیزی که مولانا جلالالدین رومی نقل میکنه کجایی که موسی میبینه شخصی شبانی داره دعا میکنه خدا را صدا میزنه کجایی که چهار بدوزم و نهاد نوهاتشو بکنه و فلان بکنه و موسی میاد انکار میکنه این چه وضعی که به خدا میدی بعد خدا میاد ملامت میکنه ای موسی چه کار داری بنده هر تو به دل اشخاص مرا صدا بزنه ولش کن بنده و از من نرون از کجا اومد این قصه از الهداد ملحدین زنادقه یکی از احکام شناخت وضع در حدیث معنای رقیق و زشت و زننده ای که در متن هست دیگه نیازی نیست برای اثبات دروغ اون قصه ما دلیل بیاریم مثل اون رابی که می بیاد خداوند عرق را خلقت کرد بعد اون اصف عرق میگونه خود خدا خودش رو با عرق اس خلقت میکنه خب نیاز داریم که دلیل بیاریم که این رابی دروغو هست یا نیاز داریم که بگم متنش بگه فلان آیه در رد این در رد این قصه است یا این یه چیز بدیهی و ضروری هست که خداوند مخلوق نیست بدیهیه یه درسته؟ یا اون زندگی میاد میال خدا اولاغ را خلقت میکنه از دهنش میره داخل از مقدش میاد بیرون کفر این گفته و گفتار نیاز به نفس داریم که مثلا بیان این حدیث در رد این آیه در رد نه لازم نیست بعضی چیزها ضرورتن و بدیهتن معلومه نیاز به دلیل نداره خیلی از مسائل هست که اینجوری بوده و علمه اومدن جواب دادن و پاسخ دادن اون شبهات به صورت مجمل یا به مفصل جاهایی مفصلن در کتاب‌های اعتقاد اون شبهات بررسی شده مثل همون بحث رویت خدا داشتی یک شبه است شبهش اساسش از کجاست از ارسطو اینی که اگر بگیم خدا دیده میشه پس خدا محدوده در یک زاویه خاصی دیده میشه خدا در یک جهت خاصی میشه یعنی پشت سرمون دیگه نیست خدا میشه یه که محدود این شبهه چیه شبهه عقلانی ها اصباع جه بعد بارس خب اینجا است که اینجا صاحب حاکمه میاد میگه که دین تو دین اقیه قرار قرار بده ائمه اونهایی که تابع صحابه بودن و الذين تبعهم احسان اینها قولشون این نبوده بدون اونها نمیگفتن خدا دیده نمیشه و اونها کسانی هستن که خدا دربارشون میگه انما يخشى الله من عباد العلماء اونها اهل ترس و خشیه و خوف از خدا بودن اونها متقی بودن فکر اونها به قول بعضی ها به مصلحت حکومت فتوا دادن اونها ترسی از ملامت و از نکوهش و از عذاب نمیده شکنجه معموری حاکمی ولی امری نداشتن مثل ما محمد سه سال شلاخوت ولی استقامت اونها متخیب بودن و بیدار که دان الادخیاب این حرفاری که من در تکرار میکنم چون به هم دیگه رب داره یعنی مسئله به مسئله دیگر ارتباط داره احادیث سریح میاد رواه جرير عن قال محمد جرير بن عبد الله صحابي رسول الله اسناد صحيح بل كه اسناد متواتره وليكن ان جهمي به عقل قدش مياد اين حديث انكم ستران ربكم مياد اين حديث رد ميكنه چرا چون با عقل ناقص و قاصرش عقل مخلوق ذيبش مياد روبروي رسول الله ميسته و حرف رسول رد ميكنه خصم خودشو رسول الله عليه و سلام قرار ميده بی ادبی, نه نه بی ادبی با مقام نبوت هر حرف رسول الله حرف میزنه این لا طرف از صوتاتکم صدااتکم بالا نبرید روی سرها فقط تنهایی نیست که آدم صداش رو بالا بره از گستاخی اینه که رسول الله صلی الله علیه و هر حرفی را بزنه بعد بگید این حرفش اشتباهه بس بگید شما خدا رو میبینی بعد دیگه نه نه شما نمی‌بینید این بی ادبی و مقام نبوت از جمله چیزهایی که جهمیه برخلاف ائمه سلف گفتن انکار دست برای خداوند و قد ينكر الجهمي ايضا يمينه شادك جهمي دست خدا رو هم میگه نه شاید حتما جهمي دست خدا رو انکار میکنه میگه خدا دست نداره چرا خدا دست داره میگه اگر بگیم خدا دست داره میشه خدا جس لازمه این دست ما جس بودنه پس اگر وقتی خدا هم میگه دست یعنی این دست اگر خدا دست داشته باشه پس خدا میشه محدود میشه جس میشه ماده خدا ماده نیست نباید دست باشه خب خودش میگه نمیگم قرآن حملات الوجوه یعنی قرآن هر وجهی احتمال داره باشه خودشه نبی طرف ادعا داره قرآن میشه بر چند وجه حملش کرد ولی در اینجا فقط بر یک وجه حمل میشه و اونم دست معنی قدرت احتمال نداره که این دست به معنای دست حقیقی باشه آیا اینجنی فهمی صحابه داشتن آیا اینجنی فهمی تابعین داشتن تابع تابعین داشتن خیر نداشتن و بلکه انکار کردن بر این گفتهشون و گفتارشون با این هارف و قد ينكروا الجهمیو یعنی اتباع جهم، اون کسی که تابع جهمه کسی که بیاد از بدعت صاحب بدعاتی دفاع ببنه تابع هامونه هر کسی بیاد دیگر خدا در صدر جهمیه تابع جهم در مقوله نتابع مالك نتابع ابو حنیفه نتابع احمد محمد تابع جهم و هست. هست جهم و قائل به این بود که خدا نت صحبت میکنه که گفتیم بیان کردن دیشم و نه هم دست داره استدلالشون به بي چیه به اینکه خدا دست نداره از قرآن به چی استناد کردن گفتن در قرآن جای دست به مفرد اومده جای به مسن اومده جای به جمع اومده میان مثلا جهل شما نگاه کنید میگه خدا در قرآن گفته وسماء بنایناها با بایدن اینجا گفت چی جمع اید را جوابش میدین یه جا گفته در قران ما ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديك مسن چه دیگه میگه بیا دین خب الا یده یا یدین یا ایدی هست کدوم یکی الان ما میگیم نه کنید هر کدوم وظی داره اما واسما و بنینها به ایدن این اید غیر از ایدی هست جمعیت میشه ایدی نه ایدی ای در لغت عرب است اید از قدرت از تقویته اید چیزی دیگه هست ایدی چیز دیگه هست دیگ تمامی عرب بدونن که جمع ید ایده یا ایدی است اید أي درس؟ أنت عبيلة تحرير، أنت عبيلة يعني تفسير. بس لو قلت أنت عبيد، لطمعنا درة. تفسير وتحرير. بمعني حقيقيش أو معني غير حقيقيش. والسماء بيننا بأيدين. معني حقيقيش أو غير حقيقيش. حقيقيش. كلام؟ شو نقول؟ من معناهش إيه؟ خدارات. درس. فرموديه خدابان. بل ميداهو مفسو تطان. دستان خداباز. دستان خداباز. إن جا مراد. معنی حقیقی یا غیر حقیقی هر دو تا چطور بلی دهو مخصوصتان استعاره از چیه بخشش میگه فلانی دست بازه درسته استعاره از چیه بخشش جایی میخوام بگم اینکه در نص میاد دلالت یک چیز به عنوان تفسیر و در اونجا وقتی که دلالت میده برای یک چیز اصلش نبد نمیشه مثل وقتی میگه فلانی شب دست بازه دست داره نداره این دست بازی به عنوان که به کار برده میشه اساسش داشتن دست هست یا نیست باید داشته باشه که به اون فعر به دستش نیست اینجا وقتی که ما میگیم تفسیرش اینه نفی اصلش نیست وقتی که میگیم تفسیرش بخششه دلیل برای این, این نیست که چی ما اصلش این کار میکنیم مثل قول اون چیزی که نقلش از ابن عباس یا مویخش رفا انساق این از حیبت اون روزه این نفی ساق نیست برای خدا بلکه چی؟ مدلول عزمت اون روزه. مدلول اون آیه. أجلاد التفسير ليش؟ أما فالمديح خداما وما من ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ما منعك بشيطان قال يا إبريس ببريس خدام إذا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعمشين الإمام تبريره تفسير الجامعة كتب تيمية تفسير الجامعة تبريره ثم بعد ذلك تبريره بيقوله نخ میگونن از گفته لغت الغت عربی هیچ وقت مصنا نه به عنوان استعاره نه به عنوان مجاز هیچ وقت به معنای قدرت نمیاد وقتی گفته میشه مصنا مثلا اینجا گفت یه یا نمیشه استعاره از یک چیز باشه یک قدرت اگر بگیم ید به معنای قدرته نمیشه استعاره از یک قدرت باشه باید بگیم دو تا قدرت وقتی که میگیم دو شیر مرد اومدن نمیشه میشه یک شیر دو دو دو دو بله اگر جمع باشه احتمال داره و فردم همین دو مثلا فرده ولی مراد دو تاس مراد سه مثلا یک از شما میگه مثلا در عربی گفته گفتیم سمعت به اودونی رأیتو به عینی اینو صبحی که اول مطرح که چرا جای جمع اومده چرا جای مفرد اومده در لغت عرب اینجوریه جای یک چیز فرد گفته میشه مثلا میگیم سمعت به اودونی یعنی اود بگوشم شنیدم اینجا از باب مستر اصل شنوایی هست نه که انکار بشه که ما تا گوش داریم بگوشم شنیدم یا به بیگوش... یک بل... لغت عربی مدلشیت داری سمعتو به آذنی نیی با یک گوشم شدیدم نگف آذنیه سمعتو به آذنی میگن به ولی مراد چیه؟ این استحمال عربه این لغت عربه سمعتو به آذنیه نی آذنیه پس دست وقتی که بیاد هیچ وقت نفس نمیکنه نه تا دست و نه سته تا نه چهارتا جمعشان وقتی که اومده دست خدا دست برای خدا من در اصول ما داریم دو تا دست دیگه سته تا و چهار تا نداریم اگر جمع اومده باشه از باب چیه از باب تعظیم اگر اومده باشه که من فعلا حضور ذهن ندارم یک نسکی که مثلا به عنوان جمع باشه شبها در بحث دست خدا من زیاده من این آیه اصل قرار میدم تا اینکه معنای این گفته جهمی در انکار کار بازر خب ما اگر نگاه بکنیم ما منعه انتس جدا چی چیز مانع شد سجده نکنیم لام چیه انواع لام کنیم در اصول لامه تعریل درسته لیما خلق تو بیادی از آن چیزی که با دست خودم خلقت گذن خب عربیم با تفسیر جهمی بگیم این دست به معنای است، این دست به معنای قدرت گفتیم از لحاظ لغت عرب مصنع هیست به معنای مفرد نمیاد آیا میشه گفت ما منعه کانتت هست ما خلقتو به قدرتیه میشه گفت قدرتیه قدرتیه نمیشه گفت دو تا قدرت خدا داره قدرت نمیشه دوتا باشه یک قدرتیه قدرت یکی حتی اگر جمع هم باشه قدرتیه کردهش ميشه یکی یک قدرت. نمیشه دو تا قدرت بگیم به نسبت یک شخص قدرتش یکیه بس در لوقت عرب جا نداره آلا بالفرز فرض محاد که بگیم عرب اینچین استعمالی کرده باشن که آقا مسننه باشه فرد مسننه باشه فرد به فرز محاد بگیم این مسننه یدیه بشه یک قدرت تعلیل خداون لما خلق تو بیده این باطل نمیشه ابلیس خلق سرينه به آن چیزی که با قدرت خودم خلقت کردم ابلیس نمیتونه بگه در اونجا خب او منم با دست خلق خلقت شدم منم با قدرت خودم خلقت شدن ابلیس میتونه در وا بگه یعنی میتونه بگه ابلیس از وقتی خلقت شده پس مزیتی نیست خداوند داره فرزنش میکنه نکوهش میکنه وجه برتری آدم را برای ابلیس میگه ابلیس حرفی که سر چه نکر درسته و اطاع رب کل الملائکه اسجدوا بس وَيَخْلُقُ الْمَلَائِكَةَ يَسْجُدُ لَهَا فَسَجَدَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ إِبَا وَاسْتَكْبَرَ سَجَدَ نَكْ خُب إِنِ اسْتِكْبَار إِبْلِيس داره بهش میگه چرا این کارو کردی استکبار ورزیدی این کارو نکردی در صورتی که آدم مزیتی داره مزیت سیه بما خلق و تعلیل سیه مزیت لام تعلیل و بیان حجت بر ابلیس که این چیز به خاطر این بوده یعنی این از تو برتر بوده آدم از تو بهتر بوده تو باید سجده میکردی چرا نکردی؟ جواب چی گفت خاله خلق تری من نه، ابلیس از جمعی ها جمعی آگاه ابلیس نه دروغ بگه نه بگه که یعنی حرف توی خدا من میشه بر قدرت منم با قدرتت خسد شدم ابلیس این جواب دار ابلیس چی گفت خل من از آتشم اونم از... از گله آتش از اون برتره ابلیس برتری فهمید ابلیس برتری فهمید که آقا آدم از تو برتره ابلیس در جا خدا گفت نه آتش برتره ابلیس گفت آتش برتره اگر قدرت بود باید ابلیس بگفت منم با قدرت تو خلقت میشم پس آیه نه به اعتبار لغت عرب نه به عنوان مفهومش این چینی دلالت نمیده که بیاد این دست به معنای قدرت باشه، دست به معنای قدرت باشه، نمیشه اصلا. معنا نمیده. این ما میگه لازم نبود اگر به معنای قدرت بود، میگه خلق خداوند بود، به قدرت قدرتی. خداوند نمیتونست بگه ما منعته ان لی ما خلق خلق تو دیگه لازم نبود بگه خلق تو به قدرتی. تو خلقت لازم شیه، نازماش قدرت دیگه لازم نبود بگه. خلقته بيديه خداوند نم اضافه نیست بیهوده نیست خداوند اگر یک معنای یک چیزی میاره برای چی برای بیان یک مزیت بیان یک فایده به خاطر همین در حدیث داریم حدیث شفاعت که رسول الله صلی الله علیه و میفرمایم میفرمایند روز قیامت وقتی مردم حشر میشن محشور میشن میرم پیش آدم میگن آدم خلقت الله بیاده." خداوند تو را دست خودش خلق کرد تو آخرش آدم میگه که من اولین گناه مرتکب شدم برید پیش نور میگن ای نور خداوند به این مذیعت و اون رو داد نور میگوید من چیزی از خدا خواستم که نباید میخواستم میرم پیش موسا میگه ای موسا خدا تو صحبت کرد این مزیت را بهت به و اون مذیعت گفت که موسا گفت من کاری که نباید میکردم کردم آدمی را عیسی و تا که میان نظر اصل، یعنی پیش حرف پیامبری که میام، در روز محشر یک مزیت رو میگن. خب الان شما آیه قرآن رو تغییر کردی، الان ما گفتیم بلفرد محال سوام. اگه بگیم اینجا هم است، این تعلیلم نمیاد. اما با این حدیث چیکار میکنی؟ حرف پیامبری وقتی که مردمان محشر در صدر محشر میان، انسان ها میان میرن پیش آدم. چرا گفتن به آدم خلقت الله بیاده؟ این جمله تقصیت آدم به این مزیت میده. تخصیص آدم با این مزیت که خداوند با دست خودش آدم را خلق کرده، بقیه این مخلوقات را خداوند با خلق کرده با قدرتش. ابلیس وقتی تصاعد شد با قدرتش به یکون. با چی؟ کن خداوند این مزیت را به آدم داد. وقتی که به ملائکه می‌فرسته به زمین و می بیاد از خاک زمین بردارن و بعد از اون خاک آدم را می‌سازد، خداوند با دست‌های خودش بعد در آدم روح می‌داند. بس قرآن و سنت هر دو دلالت بر خلاف قول جهمیه بر اثبات دست دو تا دست برای خداوند دو تا دست خب یک شبهه در ذهن شاید ایجاد بشه ما در حدیث داریم رسول الله صلی اللہ علیه وسلم می فهمم کلتا یدیهی یمینون دو تا دست خدا یمینه راست یمینه از شرف از برکت یمینه در لغت عربی از قیامون خوشیمنی وش از،, از یعنی چیزی که پربار باشه این چیزی میاد پرقدرت باشه این کنایه به کار برده میشه در لغت عربی که میشه وقتی گفتیم میشه یمین اصحاب یمین این خوشلمنی هست حتی کلمه یمنم در صلوات فرضی هم به کار برده میشه چیزی یم داره نه خوشایند هر دو تا دست خدا بند یمینه خب تو جمی من با حدیث صحیح مسلم كخذوا بعده رزقيه مين وقت اللي ميجي اين الجبارون اين المتكبرون بعد الحديث مياد فيا ياخذهن ياخذهن بشماله خذوا او سموها ضميرها بايد الشمالش من داره شطور جنب بني جمع مونينه كي ان حديث درسته هي مسلمه بل لفظ الشمال شاذ زي فمش مو در بس الان خودي در اصول علم الأصول شاز مخالفت سخه با مجموعی سخه کل طرق روات میگن گفتن فیا قدهنن بیمین یک رابی میاد مخالفت میکنه میگه به شماله بقاطر همین شیخ فالبانی رحمه الله این لفظ رو در سسله زیفه میگه شازه قبلا تحصیل میگه بعد شیخ متوجه شد که به این با توجه به طرقش این لفظ به شمالهی شازه بعض از علماء گفتن اگر بلفرزم باشه. اگر گفته به شمال به خاطر معنای معنای یعنی مخالف این دست دیگر خدا یعنی دست راست و اون دست دیگری که اعتبار راست هم هست به اون اعتباری که در جهت مخالف اون دست راست بهش گفته شمال نه به اعتباری که دست خدا اون دستش دیگه پربار و پربرکت و خوش یمنو نمیدونم ضعیف تر از دست دیگه‌یه یا منزلت شعرش از دست دیگه‌ کمتره نه به اعتبار دیگه‌ بعدها گفتن بالفازة صحتش شماها لو تفسير تفسیرش کردین وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا وكلتا يديه كلتا يديه چن تو دو تا داشت يديه بالفواضل منظور الفواضل فضیلته يعني هم يوم در حدیث شریف كلتا يديه يمين بالفواضل تنفح يعني دستان خداوند بنیکیها بخشنده است داستانش بنیکیها و فضیلتها بخشنده است نه می برد داستان قضا به خیر و بركتیم. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح وقل ينزل الجبار قال صلى الله عليه وسلم اذا كان ثلثي الأخير من الليل نزل الله الى سماء الدنيا فيقول هل من داع فاستجب له وهل من مستغفر فاستغفر له حديث اثنين درس ان جهمي ان مجتدم كده ذهنه خودش تجسيم میکنه بعد صفه الرسول تاثير و نصب میکنه میاد میگه اینجا الان ساعت یک شب خدا میاد تو این آسمان یکم میریم جلوتر بندر ساعت یک شب دوباره تکرار شده یک شب خودمون فرق می با اونجا یک شب هی بریم بریم تو زمین همیشه ساعت یک شب تکرار داره میشه. و قلنزل الجبار و فی کل لیله از کجا نزول میکنه خداوند؟ از بالای عرش درسته؟ رحمان عرش است و خدا مستدیب در عرش یعنی بالای عرش درسته؟ خب خداوند وقتی که میاد از بالای عرش پایین لازمه ایش اینه که ذات خدا پس کنار مخلوقاتم باشه چرا پس شما در معیت گفتید که خداوند ذاتش اینجا نیست خدا میگه نمیاد از عرش پایین ما گفتیم هیچیک از مسلمان ها خدا به ذاتش اینجاست نگفت میاد به دنیا گفت به آسمان دنیا این معانی رو درد بکنید گفت به آسمان دنیا بعدم نه جهد و نه زمان نمیتونیم برای خدا مشخص بکنیم خداوند آن چیزی که بوده و آن چیزی که الان میشه و آن چیزی که میشود برایش فرق داره برای خدا فرق نداره الله علام غیوبه علامه که یه عجوج میاد دجال میان همه رو خدا گفته دونسته ندونسته عالم بوده نبوده عالم علم خدا و جهاد برای خدا هم همین نه زمان نه مکان مکان مکان موجودی نیست مکان غیر موجودی مکان منظور مکان مخلوقی برای خدا نیست اون مکانی که برای خدا هست بالا عرشه مکان ادمی بهش میگن به خاطر همین گفتیم ما ای که اینجا هستیم خدا بالا اون کسی که در امریکا میگه خدا بالا این به اعتبار ما هست مخلوق ولی به اعتبار خالق در جهت ادمی واقعه جهت برای خدا مشخص نمیتون مشخص بکنیم یک شبهه در ذهن میشه و اونم اینکه شیخ الاسلام و هو قريب من عباده في اعلى علوه هو من عباده في اعلى علوه خدا را نزدیک بندگانش در بالاترین جوامع هست و خدا در قرآن میگه و اذا سالك عبادي عني فاني قريب ما دار لفظ معيات نصوصي که خوندييم که نصوص بمده ما در نصوص يا معيات نظارت و شنیدن و یا تایید و نصرت نصوص را اینجا خوندیم ما گفتیم اون نصوصی که دلالت بر این قضیه دارن مثل پرموجی خداوند و هو معکم ما کنتم والله بما تعملون بصير معیت خودش را با بصير بودن خودش محترم گرد یعنی این معیت خداوند با علمشه با اون چیزی که دلالت و تایید میکنه بر این دلالت و این مغلول فرمودي القطابان يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول ما بفتين این معيات قريني دل لغة عرب هاس بر معيات دلالات بر هم و دلالات بر اینك زاد اون چيز اون جاهم باشه نمیده مثل اي نذهب والقمر معنا میریم و ما با ما هست همراه ما هست این همراهی در امتزاج خلف شدن قاطی شدن یا اینکه تن به تن هم باشن نمیده در لغت عرب لفظ معیم اگر ما شاید یک شخص بسن که خب شما دارید این نصوص را تأویل می کنید. ما گفتیم تأویل الان دنبه تأویل به معنی تفسیر تأویل به معنی تحریف این لفظ از معنای حقیقی خارج بشه به یک معنی غیر حقیقی. الامجازی کنا در نظر گرفته امجاز قری غیر حقیقی قرینه روشی است اگر قرینه روش باشه که قابل قبول نیست قابل قبول است اگر قرینه روش باشه یعنی لز ذلاله قرینه معنایی بده که قرینه روش داشته باشه خب الان اینجا وقتی خدا مثلا به موسی میگه اننی معکما باشه ما اصلا اسمع و ارى خوش من جواب بده قرینه زنی قرینه عرفی قرینه لغوی اگر من به ذات خودم اینجا مثلا برفر من بگم به یک شخصی برو فلان برو مثلا برفر اونجا من با تو هستم با فلان کس هستم دواب کن من با تو هستم لازمه که من میش بگم میشت بگم میشته من میبینم دیگه لازم نیست چون دیگه همینجا هستم دارم میبینم دیگه لازم به تحکیل نیست پس حتما این معیت معنای دیگری داره برای اینکه تو ذهنمون نیاد که خدا اونجا بوده حاضر بوده اونجا برای اینکه تو ذهنمون نیاد خدا چی کرد تفسیک کرد. این معکومه اسمع و ارا معیت باب دهی نیماد. این این نیم معکومه و باب عکمی که ثب بکنی که دوتا جمله منفصله. درسته؟ معیت رو چطور توصیف کرد می بیند می اننی این اسمع وارى ان مع اليتمان شريدان بيدانا لا انك بذات خودم اونجا باشم و كل خداب مباين عن اصل بنين ابن تيميه اب قدمي وهو قريب من عبادي في اعلى علوه ابن ني رحمه الله بجياده سفة القرد دي تعبير نميشه و سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعا ألا أن حديث أكرم يكون العبد من ربي وهو ساجد إن جاء نسبة عبد بخدا ما زد الله بندات بخدا نزكي نزكي بند بخدا مس ألا أن جما ذلك؟ أما فرمودي خدا من وإلى سألك عبادي عني فإني قريب بفرمودي خدا من إذ يتلقى المتلقيان على يمين والشمال عن اليمين يمين والشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رضي عديد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 وهو العظيم ذو العظمة ليس اقرب شيء الى شيء منه شيء اذا خدا بشيء غير नजदीक ليس هو العظيم ذو العظمة حتى ميجي ذو العظمة بعد ميا هو الباطن هو الظاهر والباطن يطيه اقرب شيء الى شيء منه شيء اذا خدا ببنده नजदीकي نور جمع ملي بين صفات عدنات وصفات شي وصفات قر اين آيه رو مد نظر داشته باشيد فرميده خدا و ما قدر الله حق قدري السماوات مقيات بين اصلا منها واذي منظور همه در دست قدرت دس خداوندن كل اناتهم سماوات يعني هر چيزي كه يعني هر چيزي مخلوق خرشیده که یک میلیون بار از این زمین بزرگتره و این ستارگانی که هر نقطه یک کهکشانی هست یک مخلوقی که میلیاردها بار از این زمین بزرگتره همه اینها ها مقیاد بیمینه آیا این همه مخلوق با این همه عظمت که در کف دست خداوند نه چیزی هستن گلعوان در حدیث داریم حدیث زفد درش هست حدیثی که میگه کل آسمان ها و زمین در کف دست خداوند مثالشو روی داریم زید رسول الله مثل یک حلقه در یک سرزمینی که دور افتادن مثل ها و زمین در مقابل کرسی رسول الله چینی که نسبت داریم میشه رسول الله صلی اللہ علیہ که گفتم زفت درش هست بعضی علماء تحصیحش میکنن آسمان ها و زمین در مقابل کرسی مثل یک حلقه در یک سرزمین پهنوار زمین از مشهد بیرون بیارت این په کرسی در مقابل عرش یک انگشتر در یک ایک سرزمین فهناون تمامی آسمونها و عرش و کرسی همه اینها نزد خداون یک حلقه هم حساب نمیان من اینو از ما تقریب ذهنی گفتم اینکه شما معنای عظمت رو درک بکنید کسی که اینقدر عظیمه و مخلوقات چیزی به حساب نمیان آیا میشه گفت خداون از ما دوره؟ ذاتش از ما دوره؟ خیلی. چون اعت... مسافت اعتبار نداره برای خدا خدا خیلی عظیم. درسته؟ خدا خیلی عظیم. و این قرب به جلال و عظمت خداونده قریب بدون بدون خلط بدون اینی که بیاد اینجا مباین از مخلوقات. بر عرش و قریب که معتبری میگه و لیس اقرب و شئیم بخاطر همین بفت و الظاهر و باقی خدا در قرآن میگه براش فرق نمی این قرب هر شنگ امام احمد و همشه صوفیان و دیگر ایمه میگن قرب خدا علم خداست و اذا سألك عبادی انی و انی قریب و جیب و چون میگه این قرب رو رب داده به دعوت دعوت داعیی کسی که دعا میکنه میگه این قرب مقصد شنیدنه یعنی که هر وقت که تو حرف بزنی منو صدا زنی من استجابتت میکنم امام احمد این چنی تفسیر میکنه قرب با توجه به قرینه دعایی و سخنش با خداوند. ولی خب من گفته دنیا و امام در این قضیه نق با به خاطر این قضیه شفاف بشه. اینجا باز دو تا تفسیر از سلف هست در صفت قد و اذا سالك عبادي اني فاني قريب دو تا صفات یکی اونایی که میگن خدا خیلی عظیمه و براش فر نمیکنه مسافت و یک تفسیر دیگه که میگه این قد علم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 نحن أقرب تموق إذ زمانك إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال صحيح ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب رقيب عزيز بس نزكي نزكي فرشكان نزكي خضبان نزكي ملائكة خضبان ولا فرشكانش بؤن مخلوق ننزكي خضبان ولكن قفتم حرب تفسير بين سلف حس وثاني ناقفته أز مسلمان که خداوند به ذاتش اینجاست کسانی از حلولی ها گفتند بذات ما خداوند به ذات, ما خدا به ذات در ما حل شده اینو گفتند حلولی ها که حب کفرشون و لمده دهند مذهب به حلوله ولی اینکه بگیم ذاتی خداوند اینجا باشه توی دستویی باشه توی توالد باشه توی چاه فاضلاب باشه هیچ یک از مسلمانان اینجوری حرفی نزدند که خدا بشه اکسیژن خدا بشه هوا هیچ کس اینجوری چیزی نگفته یا روشی باشه که اینجا و در فو... چای فاصله باشه تعال الله اما یا قلون علوم خداوند خدا من متعالی هست پاک من از از این نجاسات بس این تا مسئله را خوب درد بکنید که بدونید مذهب سلف و مذهب غیر سلف خلف خلاف هستن چیه در بحث استوا دلالت داد که خدا مباین از مخلوقات الرحمه استوا که حدیث معراجة من خذيره توزيح من رسول الله ميران ببالا خدا رديد يقول حجابه نور لو أشرق صبحات لا لأحرقت مدة بصره من خلقه غير ممكن أن يكون خدا انجابه لأنه يكون خدا بود بعض ما أتشمع رسول الله هو خدا نديد أنا أراه شو يقول خدا ربي بينام حجابه نور شو يقول خدا ربي بينام حجابي أزنوب نجل ونبود يعني بين من وخدا حجابي أزنوب مخلوقات نمیتونن یک یک پرسیدونی خدا را میبینیم وقتی که منو تحمل نمی‌کنیم اینجا خداوند طوری مالا کرده که خیلی ضعیفیم این خلق در روز قیامت عوض میشن خلق دیگر میشن یومت و بدل الارض و غیر الارض دیگه این زمین این زمین نیست و ما این جسر اختیارمون جسم دیگریم و قدرت دیگر را خدا به میده که او را ببینیم و لذت ببریم از رویت بهش همونطور که خداوند بهش را با میوه ها و رودخانه هایی از شیر و اصل و نمیدونم چیزهای مختلف قرار داده و کاخایی از ترام و نقره قرار داده خداون قادره به این کار است. این قدرت را به میده که خدا را ببینیم پس استوای خداون الرحمن علاش استواد دلرت در این دادت خداوند مباین از ماست جدا از مخلوقات و معیت خداوند دلالت داد که خداوند میشنود و میبیند و ناظر است بر ماها معیت و قرب خداوند هم دلالت بر عظمت خداوند داد و یک نزدیکی خاصی به بندگان خاص اونم بندگانی که خدا را صدا میزنند و فریاد میزنند و اونم شنیدن خاصی اهمیت خاصی خداوند نسبت به اون بنده این تا چیز را نباید با هم دیگه قاطی بکنیم و وانتنان شئ سلاح فهميداً بفهمين وقل ينزل الجبار في كله فس خداها مياد كذلك مياد باين الشيف و مجهول السبايا خدا معلومة ونزول خداها معلومة. معلومة نزول هم همي سور ما مدين معنى نزول شئه بين نميگن نزول نزول هشيه اسباله باين معنى النزول مدين ينزل أو نزل معنى شب وقل ينزل الجبار في كل ليله بلا كيف بدون كيفيات دادن بدون مثال زدن بدون اینکه بگیم مثل این یا مثل اون مثل فرند میاد پایین یا مثل انسان میاد پایین از اون پله پایین کیفیاتش ما نمی‌دونیم ما نمی‌فهمیم برای خدا مثال بزنیم ممنوع شد پس در قرآن می بولید الله الامثال مثال برای خدا نزن مثال خودت نزن نه مسلمان نگو فایونمدن مثل من نگو فایونمدن مثل فرنده فلا تفضه قبول الله چرا مثال نزنیم؟ لیسه که مثلی چون چیز مثل خدا نیست یعنی اون چیزی که شما در قیاس میگیری اون چیز مثل خدا نمیتونه باشه نه انسان نه فرنده اون چیز نمیتونه مثل خدا باشه تو نمیتونی وید چیز مخلوق خالق را باش قیاس بگیریم نه خدا را دیدیم نه مثل خدا قیاسم منم پس بس اساس گمراهی جهم و امسالشیب است قیاس خالق با سبب شد که کل آسمان سفره انکار بکنه. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح با شکوه باشد. با شکوه هست. خداوند یگانه ای که است اهل سطوح المتمدحه. مستحق مدفع ستایش الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یومید این و ستایش خداوند خداوند را باید مدفع ستایش بکنیم تنزیح بکنیم از این که مثل خودمون بگیم که خدا مثل ما بنده عاجزه میخوابه خسته میشه میخوره میاشامه زشته عیبه بر تو بنده که خدا را بر خودت خیاس بگیری خداوند لا تأخده حسنت ولا نوم نه خسته میشه نه میخوابه نه چورت میزنه نه نیاز به غذا در خداونده الله سمد بینیازه از تمامی کسان شما نیاز مندشه خدا متمدهه مده و ستایش باد بشه نه نفیه و سندان خداوند به درجه عدمی اگر بگید خدا اینجا هست مدهی درش نیست عزتی درش نیست ستایشی درش نیست خدا بشه هوا چه پچیداری درش هست چه ستایشی درش هست هوا میتونه بشنوه هوا میتونه ببینه چشمش کجاست گوشش کجاست این چه هوایی که از این وعد میخونیم وارد خونمون میشه خداست خداست که نفس میکشیم میره در سوسما وارد خون میشه در خون انتقال پیدا میکنه بعد از او بر ادرار میگوریم خداست این هوایی که در درون ما میره این تسبیح خدابنده این مد حقودنده این ستایشو خدابنده این کفر محضه کفر محضه که بگیم خدا من همه جا هست مثل اون جمعی که با کمال حماقت؟ هست مثل ابن عربی میگوید حتی اون سیدی میبینید خدا نه فرقی نمیکنه خدا که همه جا هست همه چیز هست چرا؟ چون معنای عظمت الهی را ترک نکرده بلی اون سلفی اون که عقیدش سلفی می داند که خداوندش جبار و متکبر و سمیع و بصیر و قهار ایده اشبقت صبحات و وجهی احرقت مده بسریگی من خلقه یک نورش یک شعاع پرتبه وجهش تمامی مخلوقات رو نابود و دگرگون می در نفسش، در قلبش خداش خیلی عظیمه نه خداش هوا باشه نه هم خداش یه چیزی نابود شدنی به هست شدنی باشه خداش متعالی، متمدحه صاحب مدش و ستایش خداوندش میشنبه خداوندش میبینه چون اون کسی که نبیبیند نمیشنبه دیگه مستحق ستایش و مدش نیست چطوره که ما در خودمون وقتی که میبینیم این بیناست و اون نابینا این بینا بهتر از اون نابیناست برای خودمون مدش میبینیم ولی برای خالق نابینای را میپسندیم خدا نابینایی برایش خوبه نشدیدن برایش خوبه خدا چیه خدا پیششون توچ عدم نبا چیز پس خداوندی که با شکوه متجلل جلل واحد اون خداوند یکتای جلیب با شکوه اون احدی که شکوه داره صفاتش، عظمت داره صفاتش، مورچه ریز سیاه رنگ در شب تاریک، در دره ری تاریک روی سخری سیاه رنگ خداوند می بیند و رس روزیش می رساند. کدام یک به خدا نزدیکتر قلب یک مؤمن عابد طبع سلاب یا اون جهمی که میگه خدا نمی و نمی اون کسی که دست به دعا بلند می کند؟ ان الله میده یقین داره وقتی خداوند میگه ان الله یستحی من عبده اذا رفع يديه الیه ان ان يردهما صفرا میدونه خداوند شر میکنه بنده اش صفرش بهگردونه دستشو پر بر میگردونه وقتی که دستش بلند میکنه میدونه خدا داره صداش میشنوه غافل نیست کمکش میکنه و میبینه حالش از قلبش انی لما انزلت الیه من قلب من خیر البی میدونه حالش این قلب با اون قلبی که خداش پوچه یکیه اون کسی که فکر میکنه خداش نمیبینه فکر میکنه خدا نمیشنوه حب دعا سرا بکنه دیگه نیاز نداره که دعا بکنه چون خداش پوچه هسته خدا نداره خداش نمیبینه نمیشنبه ولی مایی که بگیم خدا میشنوه و غافل از یک موچی سیاه رنگ نیست از حالش با خبر مطبع مکماله دیدن رو به خدا میدیم ندیدنی مثل ما عاجز دیدنی که مثلش دیدن ها نیست هیچ چیزی از ششش غافل نیست و هیچ چیزی از شنیدنش غافل نیست از سلامش نمیوفته و قل ينزل الجبار في كل ليله بلا كيف جل الواحد المتمدش الى طبق الدنيا یمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح هر باب السماء دنیا میاد بخشش خودش را و سرش میده بخشش خودش رو سراзир میکنه حل نداع فاستجیب له این بخشش های خداوندی ای بند قدر یک شبه مقرب رو بدو قدر تهجد رو بدو غافل نباش نعمه ابد عبد الله لو كان يقوم لي ابن عمر رضی الله عنه یه روزی دیدم که مردی شخص گرفتن میخوان بره جهنم تو جهنم میاد آتش رو دیدم تو جهنم, جهنم میخوان رو بندازن دو تا ملک دستم گرفتن و مدن پیش حفصه گفتم حفصه بربر رسول الله ببین چه نخابی دیدم ترسیده بودن بعد رسول الله گفت عبدالله یعنی عبدالله بن عمر شخص خوبی اگر قیام اللیل بکنه میگه بعد از اون دیگه قیام و تهجد رو ها خوبی ما خوشبختی ما نیکی ما سعادت ما بر میگرده به اعمالمون اعمالمون نی قرار بدیم از رسول الله الگو بگیریم قیام از طلب نیفته مگر ای غلط علمی در کار باشه مسئله دیگه است یمنه بفضل فضلی خداوندان حضیرش توبه هامونه و استجابت دعامون و توفرج و عباب و سمه و و دروازه های آسمان برای نیایشمون برای دعامون بازه و با خداوند درهای رحمت را برامون باز کرده و بدان که درهای رحمت خداوند برای تو ای مؤمن همیشه بازه درهای رحمت برای تو بسته نمی شود بدان که خداوند دعوت تو را استجابت می کند دیگه ما بقیر انشالله میداریم به بعد هرچند که در ادامه های این بحثه یقولو الا مستغفرون یلق غافره و مستمنح خیرن و رزقن یمنحو خداوند ندا میزند همون گفتیم هل من مستغفرین فا از زغفر لعای کسی هست که بخشش به ببخشمش و مستمنح خیرن و رزقن فیمنحو کسی دنبال خوبی ها هست رزق و روزیه و نیازمنده از خدا بتلبه و خداوند اون داده را بهش بده اون چیزی که ک منو خوش بوش بکنه یعنی بده اون خوبی و خوشی رو بهش برسونه ان بعد باز همچنان ادامه داره یعنی بعد دیگه وقت حدیث میشه ولی خب باز پنجاده تا گذشت دیگه بعد ان سر وقتش ادامه می‌خوایم داد سبحانك اللهم بحمدك صلی الله علی و